بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده یکتا عرض سلام و درود فرخوان در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی خیلی خوشحالیم که به لطف پروردگار منان با یکی دیگه از سری قسمت‌های برنامه های آینه سلامتی در خدمت شما بزرگواران هستیم انگار که همین چند روز پیش بود انگار که دیوز بود خودمون داشتیم حاضر می‌کردیم تکایا و حسینیه‌ها و هیاتون داشتیم سیاه پوش می‌کردیم برای عزاداری عزاداری ابوالفضل حسین علیه سلام که محرم الحرام قرار بود شروع بشه و انگار که همین چند روز پیش بود که محرمو شروع کردیم با یاد امام حسین به لطف خداوند و بعد هم تاسوعا و عاشورا و فکر می‌کنم اگه ایشون نکنم شنبه هم اربعین خیلی راحت 40 روز گذشت و این فقط عمر ماست که داره با این سرعت داره بعد خیلی مراقب باشیم و کاری بکنیم که هر روزمون با روزهای قبلمون فرق کنه امروزمون با دیروزمون خیلی فرق کنه و هر روز بیشتر تلاش کنیم تا بتونیم منتظر واقعی حضرت مهدیت جلاله تعالی فرجو شریف واقع بشیم انشاءالله امروز با یکی دیگه از برنماه های سلامتی در خدمت شما ازدان هستیم من برای اون دست ازدانی که شاید این اولین برنماهی ما باشه که در خدمتشون هستیم میگم برنامه این سلامتی تلاش داره با تکیه بر آیات و روایات در حوزه ی طب اسلامی بتونه مشکلات و گرفتاری‌های های جسمی و روحی شما بزرگواران رو گوشه ایش رو حل کنه و یا شاید انشالله به لطف خودمان کلن با اون نسخهی که استاد از زن ارایی می و با رعایت اون نسخه ترسد شما از مشکل مشکلتون مرتفع بشه و حل بشه در نمایین سلامتی تا اینجا من فیرم کنم ده دهت عوضا ده همه ما باشه و استقبال خیلی خوبی داشتید واقعا تشکر می کنم ما در لطف شما با ارسال پنهانکاتون مخصوصا با این سامانه جدیدی که دوستانم آمده کردن با ارسال ایمیلاتون ایمیل خیلی خوبی داشتیم قابل پیشبینی نبود واقعا حجم ایمیل اما خوشبختانه شما هم با این تکنولوژی اونس گرفتید و اومدید جلو اون دسته از کسانی که ایمیل زدن میدونم که قطعا به جوابشون رسیدن پس حتما ایمیل ما رو فراموش نکنید که من در برنامه حتما اعلام می‌کنم استاد خدمت های حسین الله زیایی دکتورای ف خوشحال کارشناسی کارشناسی ارشد هوا و از همه منطقه متحده تبدیل هم موضوع برنامه ما از خیلی خیلی خوشحال میشیم خدا شما را با آفریده داده خدمت بینندگان و شرندگان عزیز شبکه جانی بلالات سلام از میکنم در تهیه فرمایش این بزرگوار از فرمایشات امیر المؤمنین علیه علی علی السلام هر فرصت رو تمال و نوستحاب فرصت های زندگی همچون عبرهای بهاری درگذرم حسن استفاده از جوانی نوجوانی آمر سبب میشه که انسان حال با آیندهش خوب و خوبتر بشه و بهشتی زندگی کنه به بهشت بر. اگر آدم از فرصت های تلایی زندگیش حسن استفاده رو نکنه قصه‌ها ها به دنبال دارند زمین امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید ترک الفرصه قصصان ترک فرصت های زندگی قصه‌ها ها به دنبال دارند ما در دا خدمت شما بینندگان عزیز هستم خب اون دست هستانی که روال برنامه ما رو می‌دونن می که ما 20 دقیقه و 25 دقیقه افتاده برنامه رو کنیم به پرمک ها اون سالت که شما از قبل ما ارساب کردید برسیم و اون جواب های اونها رو بدیم، پس اون که پرمک زدن و نمیتونن تماس تلفنی داشته جان حتما این قسمت افتاده برنامه رو ببینن حتی ممکنه اون قسمت تلفن‌های های ما هم سوالاتی عنوان بشه که مشرور شما همون سوالگاه باشه و انشاءالله مشکلاتتون حل بشه و بعد از۲ مییموم سالال تلفن ها که شما تلفن ها از الان اعلام میکن اما نیم ساعت دیگه 25 دقیقه دیگه از الان تماس نگیرید سفاص یازده دو25 چه و۶ نه۲25 چه و پنج چهلو یک پ۳، دو۲25 و سه پنج چهلو یک سیده و سوامک ما که قطعا حفظ هستید ۱۵ نه دهم یه خبرم بهتون بدم. از این بعد ها اتفاق خواهد افتادی چند هفته دیگه اینشالله ما درستان اون در صدیه مشهد شاید که جهانی قصد دارم که یه سال برنامه هایی رو ما به صورت طوردی حاضر کنیم با این عنوان که همین آین سلامتیش اما فقط در داخل اون برنامه ها احادیث و روایت و آیت و قرآن کریم میپردازیم فرصت نمیشه تو این 90 دقیقه‌ای که داشتیم شما عزیزان هستیم تو برنامه ان اون نکات کلیدی و مهم رو هم از زبان استاد گرام قدرمون میشنویم مشهدعثوینولایتتیوی دات کام مشهدعثوینولایتتیوی دات کام آدرس ایمیل ماست میتونید ایمیل بزنید کسانی که ایمیل بزنند خیلی راحتتر و زودتر به جواب سوالشون میرسند خب حجا ما هر هفته سعی میکنیم این برنامه تمام کنیم ولی انقدر ماشالله شاءالله حجم برنامه که من فقط کاربال میکنم رندومای برنامهشون انتخاب میکنم و خدمت حضرت عالی میگم قبل از اینکه حالا بریم سراغ اولین برنامه من خاطرن در مورد بحث ابسوردگی و حالا چون قبلا هم هفته پیش هم برنامه پیش هم صحبت کردیم در موردش بحث ابسوردگی حالا کسی که احساس میکنن ابسوردن کسی که احساس میکنن کم حوصله کسی کسایی که میفهمن نمیتونن تمرکز کافی رو داشته باشن برای اونها یه تجویزی رو شما اشعار میکنم که ربینندگان از گرامی افسردگی از دیدگاه روانشناسی بالینی به معنای سرماخوردگی روانیه از نظر علوم پزشکی چه علوم پزشکی جسمی چه روانی علل مختلف داره یه بار شخص افسرده میشه ناشی از اینه که امیداسه این نوع چربی مفید خونش کرد حالا باید امداسه بدنش رو تأمین کنیم مثلا با مصرف روغن زیتون با هر وعده غذایی قاشق پلو خوری. یا طبق نظر متخصص اگر درسن یا استکی باشه و خانون باشه میتونه یک دونه قصد آموگاسه بدون جیوه مصرف کنه. یا اینکه شخص افسردگیش ناشی از این شده که ترک مجالس مفید میکنه یا با افراد خوب هم نشین نیست با افرادی که تنبلن یا هرزند یا نابکارن یا شرورن و جور افراد نشست و برخواست میکنه چنین افرادی قالبن خودمهور خودبینن و افراد دیگر تو محیط اجتماعی اگردو به حساب نمیارن ازاق غالبا گفتاراشون تحقیر آمیزه توهین آمیزه،, آمیزه چون مثبت افراد رو نمیبینم ازاق با افراد ناباب نباید نشست و برخواست کنن. چون افراد ناباب یکی از عامل‌های ایجاد افسردگی و ناامیدی و به آینده بهتر یکی دیگه از عواملی که ایجاد افسردگی در انسان میشه کمخونیه مخصوصا کمخونیه فقر آهن پس ارتباط داره با جسم بدن رو بله بله بله نه بله. بله. من همه سم هم خوب ایز... و همه عالیه ولی خوب افسرده من این ترمیست داره جسم روان در هم تأثیر تأثیر دارم روان نامتعادل در جسم اثر سوء داره جسم نامتعادل هم در روان اثر سوء داره و این در پزشکی ثابت شده اگر کسی کمخونی متوسط یا شدید داشته باشه مخصوصا تو بحث فقر آهن افسردگی انگل تازه تفش و هم بالا میشه های دیگری هست مثلا هممقن خبر ناخوشایند نخوشایان ترقعات بیجه و انتظارات بیجا از دیگران داشتم انسان رو و رو میکن. میکنه بازم علل دیگه هست حالا این عامل ها رو که ما برطرف کردیم خود بیماری خود به خود رو به بهبودیه حالا سرعت به بهبودی ببخشیم گفتیم هر عاملی درمان مخصوص خودش رو داره خب پس اون یه تجویز داشته یه نوته گرسید هفته پیش بله بله مثلا اگر کسی هم سردرد میگرنی داره یا اگر خانم هم سردرد میگرمی داره هم سردرد نشی از قاعدیگی دردنات هم زعفه احساب مترست خفیف و هم احسابی گفتیم گل رائعی یا چای کوهی که خارجی میگن هو فارقون میتونه قطعه های پیرانشه بخره دیستن قطعه با یه لیوان آف صبح ساعت نیم قبل این سر کار بخوره تمامیه این موارد خوب میشه اولین فرمایی که امروز بخوام بخونم 936 42 38 گفتن که همون آدی کوم آی دو چورزیایی گفتن بفهمید برای موهایی که ریخته شده و بخوایم مجددا رویش کنن و موهای تار نازک دارند و بخوایم تار ضخیم داشته باشه موهاش هم نگار بشه و موها حجم بشه من اصلا یوان پشت سرم شلن و نیز موهایی که تار خوش دارند یا حال اینگاه آتش سخته با پایین برحال موامبرکه گرفته شده چیست که حال آخرش هم دیگه کلی ارتماسگاه کسایی که ساقی نشون ضعیفه و شوره سر دارن اکلیل کوهی یا رزماری بیسته قبل حمام به سرشون بزن تقوییت ساقی مو میشه و زد است ولی به شرطی که زن حامله نباشه بچه شیرده نباشه و کسی که ضعف اصاب شدید داره نباشه چون در زن حامل سخت جنین میاره در مادر شیرده شیرش کم میشه و کسی که ضعف اصاب شدید داره حالت تحوه میکره اما اگر کسی پیاز نوش سالمه در اثر استرس ریزش نوش زیاد شده و در اثر رفتار منفی با خودش مثلا شبها شونه زیاد میکنه یا در حمام شونه و برس میزنه یا با سشوار مواشو خشک میکنه زریف شکست موهان و ریزش موش زیاد میشه این دفتار منفیشو با خودش طب کنه مواش دوباره رشت میکنه یک شخص هست که ریزش موش زیاده به خاطر اینکه انده بدنش کمه خود کمخونی مترستد و شدید رشت, رشت ریزش موی میاره خود کم خونی شدید و متوسط ریزش نمیاره خود استرس نگرانی مستمر و استرس شدید ریزش نمیاره پس این دو رو که درمان کنه جلوگیری از ریزش نش میشه حالا بخویم ریشه مو رو با اللهی که می‌رسونیم زیاد کنیم خورما با مغز با دانشین هفت عدد هفت عدد تو توش با هم رجه حالا فرض کنم هم لاغره هم ریزش نوز زیاده به خاطر فقر املاح حالا اینجا هر روز هفت عدد انجیر به اضافه هفت عدد مغز بادام شیرین درختی به هفت عدد مغز بادام زمینی این سطره به هم به جای بخواه فربهی میاره یعنی بدنش به فرم میاد نرمال میشه سوی رشته نشم خوب حال اگر صبحای شیر شیرخورما بخوره یا بعد از نهار شام هر کدام هفت عدد خورما بخوره هم کمخونی فقر و آهنش خوب میشه هم رشته موی سر زیاد میشه اگر بخواد رشته مواش زیاد بشه توانه با پرپشتی اینجا همونی که قبل گفتم انجام میده بیس دقیقه قبل از همم باقن سیاهدانه خالص به سایشون میزن اگر شخص ریزش مو شدید بوده اما پیاز مو سالمه و یا موهایی که باریک شده کرکیه کرک و پرزه حالا اینها رو بخوایم هم زیاد کنیم هم پرپش کنیم هم کرکا و پرزها رو تبدیل به شعر کنیم به مو کنیم اینجا قویترین دارو کندش. پودر کندش رو زماد کنه مثل حنایی که میخسونم پودر کندش رو به صورت خمیر شل در بیاره بیس دقیقه قبل از همم به سرش بزنه بشته مو خیلی زیاد میشه بله. چیزای دیگه هم هستن تو بحثای شوینده های مثل گیسو مثل پرند مثل کتیرا بدولایی مختلف هست یه موها با هم فرق میکنه چرده چرد نیست خوشکست خشک نیست قدرده چردی قدرده عرقش چجوره آفانین داره چی متخصصه پوست اموده حالی یه پرامه که بعدی نفتاد هیفته پنج, پنج گفتن که ببخشید نه دارم یک کلمه آخرش فرمود که موخوره داره نه گفته بود شبیه موخوره موخوره ندارد آه. همون که من گفتم شبیه مو خوره ندهدم بس باید شانه مرتب کنی در روز در جهت مو و نکه شونه و برسته هم گیرد باشه به شکل باشه نکتیز نباشه باید. در مورد همین پر مرک مصد 17 دو که قبل ناما جا در مورد این موضوع صحبت کردیم من به خدا حالا نمود با شهر سلام. از شما چپن هون حدوده سی روز که موارد مخدر از نوع را ترک کردم خدا رو شکر حالات بیغرور و پا درد امانم رو بریده خواهشان اگر راهکاری وجود دارد من هدایت کنیم. کنید اینجا باید سومن رو از بدنت خارج کنی. یعنی وسط روز یک لیوان آب پرتقال شیرین بخورید عصرانه یا اول شدم یک لیوان آب لیمو شیرین بخورید از 15 روز سموم ماحصل از مواد افیونی از بدن بیرون داره چون وقتی به یک باره نیکوتین بدن و بعضی از این مواد کم میشه بچور استخون دردای شدیدی میشن گاهی چندین روز طول میکشه مثلا حتی تو بحث ترک سیگار هم به یک باره متخصص نمیگه کل دپاک سیگار تو دو میگه دونه دونه دونه دونه چند کن دوست. مثلا روزی دو پکت میکشیدی هفته اول روزی یک سیگار خود کنده ایز دار. بعد از چندین هفته چنده شد درست مونه چند چند بعد این یکی آخر هم رویه ترک میکنی همون یک بار نمیکنن. چون کنن یک گایی اک مرتبه رحشه میگنن بسیار شدید بزرد بعضی قرصای داخلی و خارجی هست زین نظر متخصص مامنام میتونن مصرف کنم تا آسیب ناشی از به یک بار کارش نیکوتین پیدا نکنن صرف نحساب دوازده بیست و گفتن که با حضرت همه کارشناس برمومه این سلامتی حدود 3 سال پیش دندون آسیاب را بالا کشیدن ولی هنوز جاش خوب نشده و سوراخ و افونت از اون افونت میکنه که باید حلقشون میشه دکتر گفته داشتن و سینوس به ریشه دندون برسده خواهش کنم به تو زیعی راه برای من باست. اینجا متخصص جراح و لثه حتما باید این رود کانال رو ترمین کنه معالجه ریشه دندان و این مجرای نابهنگام یعنی مجرای طبیعی رو باید مسدود کنه و این آفونت و چرک تو لسه رو باید از بین دو بره حالا با چرک خوشبان و با حلطای مکنده با دستو یا ایجاد خلاع نسبی همانند هم اینا اول آخر باید جراحی لثه سعی بشه اوت کانال به شایستگی تمیز بشه چون این آفونت اگر به فک بزنه فک رو میپسونه سینوس های فکی که در دو طرف بالای فک بالا هست نباید آفونت پیدا کنه این سینوس های فوقانی نباید آفونت پیدا کنه پس حتما باید پیش یک جرواه لثه برم در بود کانال و بود کنار زیر رویشه ها قشنگ بشه و افونت ها باکس را زیده سریف چرک خوش کنید یا آموکسی کفایت نمی کن. باید پیش یک جراح لثه حتما دارم میتونم از نظر ظاهری افونت های سطحی بافتی لسته بکشم بیرون و محلول افصرکی رقیق شده یا با رنده شده و له شده خرمای سبز خرمای کال دفست. که تو کتابای تخصصی گیاهی هم اومده دفست. خب یه که... خب من یکم شاید پارتیوازی هم بشه این پرمک رو چون خوش ایمیل ندارم نهتبه سیزده گفتن که مثلا یازده ساله دارم هر شب سه بار بیدار میشنن. من هیچ گونه هوشاری نداره و هیچ را، نمی شناسن. ایمیل نما میخوان توضیح بدن. دومین آدرس داره. دیگه اینا توضیح نده. نه, نه حالا اینکه این مدت کد خواب دیده میشه؟ اون شای نداره، در صورتی خوشای نداره، اینا بگیرین. خب اینا رو بعد ببینیم چ... چه مشکلی داره. آیا این دکتر خانم 11 ساله کم خونی شدید داره؟ از افرادی که سوء تغذیه داره یا از افرادی که عادت منفی داره، سبونه نمیخوره، شام نمیخوره. چون گاهی ناتوانی و عدم هوشیاری به خاطر افت شدید خون و افت کالری و انرژی بدن یک بار دیگه هست نه ضعف اعصاب مترسته و ضعف اعصاب شدید و یا مسمومیت های ناشی از ظروف آلومینیامی و یا بعضی مطالب دیگر مثلا اگر قرصهای آنفتامین ها مصرف میکنه چه با تجویز پزشک چه غیر این تو بحث قرصهای روان برگردان اینها هم هوشیاریشون از بین میره و حافظه موقت کم کم از بین میره و حالتهای مات و مبهوت پیش میان اما قالب افرادی که این حالتها رو دارن این ها کم خونی و افت پلاسمای خون سبب درد های در جناق سینه میشه و توجهشون به مقصد کم میشه و انجام عملشون با هوشیاری لازم نیست. اینجا کم خونیشون درمان کنم. حبیب در مورد کم خونی هم بشن طعمکاری شما گفتین ببن خوب کم خونی. فقط ده تا فرمه درموارد کمخونی داری ما ایز من فقط میخونم که کمخونی مینور و مازور و اما اصلا من یه دونش که شامل حال شاید همه بشه میخونم من از کمخونی شدید رنج میبرم در ذهن خیلی هم کم اشتاها هستم وقتی هم اسهایی هم توی کمخونیاب بود، کمیشدای کمخونی چیکار کنم؟ لاغر هم هستم من راهنمایی کنم. خیلی مرتبط بود. من عسکر می‌کردم توی دارم، تنکل داشتم می‌کردم. خیلی مبحث کمخونی زیاد اومده بود. اینجا حتماً سبحانه یک لیوان شیر عسل، یه روز دیگه یه لیوان شیر قرمه، یه روز دیگه یه بشقاب عدل گندم گوش خیلی فواید داره. یه دیش کمخونیت میشه. ناهار فیلم، تا دو هفته هر روز یک سیخ کباب هفته سوم و چهارم یک روز در میان هفته پنجم به بعد هر سه روز یک بار یک سیخ کباب ضمن بخای بخوری با, با دو شیرین چند تا از کاهو هر جون میلت کم خونی فقر آهنشون و کم خونی ناشی از فقر ویتامین به 12 کشمخنی کشنده و بدخیمه خوب میشه یه بار کم خونی ماشی از فقر اسید فولیکه اینجا کاهوب به همراه نهار و شام چند برگ بخور مخصوصا درغای سبز روش اسید فولیکش بیشتر دوست بیا الان فایز زمستونه 100 گرم الی 200 گرم یه دونه لبوی بخار پز من الان این روزها مصرف مواد غذایی سنتی قدیمی، هفت دو سه بار لب رو اصلا درست می‌کنم سرشار از اسید فولیک آنمی اسید فولیکشون، فقر اسید فولیکشون خوب میشه. درست. چه زن حامله، چه زن شیرده، چه زنی که در ای ایام عادت ماهیانه باشه، چه پسر چه دختر، چه زن چه مرد تو دسته درمان فقر اسید فولیک الخصو که تو بحث کاهو داریم ویایت هم داریم هم تصفیح خون میشه هم بحث خونسازی هم بحث خرفه که بغلت زهرا بغلت المبارکه بغلت لینه اون هم سرشار از اسیدفولیکه ولیه یه مزا جمهاش اتفاقا قند خون رو هم کاهش میده اگر کسای دیابت داشته باشن و فقر خون آه. که اسید اسیدفولیک باشه یه بار دیگه تلسمیه که فرمولین اگر خفیف باشه مینار باشه شیره خورما، شیره انگور، شیره توت به نسبت مصابی اینا رو قاطی میکنی یه قاشق پلو خوری میخورسته یکی شم تا مینارش خوب میشه در طول زمان سوال من بپرسم. ماجورش احتیاجش به واحد خون کم کم یا به نسبه واحد خون شیره انگو رو شیره خورما خوبی کمی راحت تر به دست میشه شیره توت این هست مثلا در مشهد قسمت های داغرون اون طرف ترقه بس. اونجا آره و به یه موقع مناسبه این پیدا کردیم. این زیاد رو توی یهسری شهرستانش ها پیدا شدیم توی سری جوامعش شاید تهرانیش ها نتونم پیدا کنم. کدوم شهری؟ کدوم شهری؟ چی این باش معرفی کنی؟ نه این چون بهترین هاست. بهترین. هاست. یعنی ما چند منظوره عمل میکنیم. شیر خورما، شیر انگور، شیر توت چند عمل ده ده. یعنی هم هم به خرما هم به انگور در ضمنم زعف ازولانیشون چون بعضی از سوالات مردم حتی تلفونا تو بحثای زعف ازولانی شدید یا میسته میگرام یا زعف ازولانی ازولت ارادی دیستروفی تو تلفوناشون میپرسن خب اینها با خرمای تازه مخصوصا خرمای خشک مرقوب تمر برنی درسته از اطراف شهر مدینه شرق مدینه منطقه یمانه هست بسیار مفیده یا تمره های مشان یا تمره زاهدی که در منطقه عزیز ما کشور اسلامی عراق هست بسیار این خورمه های خوشکش مرغوبه حالا اینها رو میتونن بعد از قضاشون هفته میتونن با سبانه با یک لیوانشیشون هفته بخورن حتی با شکرم گرسنه اگر تا نشته بخوره ضد انواع انگل ها کرم ها کرمک های دستگاه که گوارشه اما احشان اگر شب ده عدد بخوره این همه تو روایاته موشت. که اگر شب بخوره باز چقدر فوائد داره یکیشان ضد سحره اگر خورمای خشک مرقوب زد سم یعنی عجوه این هم ضد سمه هم ضد سحره <تصفيق> این هم باز تو رایت خیلی ممنونم مچکر، چون به زمان ساعت 19 رسیدیم و باید پاساکوی تلفن ها چیزایی <تصفيق> <شه ماشم. تصفيق> دیگه هم هست میتونه با عنوان کاتاویزاد مجاورتی 3 میلو گرم ویتامین C بین غذا که بخوره توان بدن در با آهن از این <تصفيق> قضا به درده میشه یه پرتقل شیرین درست غذا بخور اگر مثلا فشارخون خونم دایو کم خون، چون کم خونی رابطه به فشارخون نداره. حالا شخص هم فشار داره هم کم خونه. میتونی یه میوه گیری فروت بخوره. ویتامین C تقریباً با پرتقال بعضی یا شکم بیشترشن. خب، دونه گیری فروت وسط نهارت میخوری هم فشار میاره پایین، هم جذب آهن در بدن بهتره واقع میشه. درست. خیلی ممنونم متشکرم از زحالی. قولی که بهتون داده بودیم میریم سراغ تلفون ها قبل از بیمه هیداری از ماشر پشت خط هستن رو جواب بگیدیم سر پانسل 11 2225 41 69 2225 41 13 2225 42 53 پاسخوی شما ازبان هستیم آیه هیداری از ماشر پشت خط هستن آیه هیداری شرکه جهانی ولایت از سلام دارم بپنس آیه هیداری بله در خیمت شما هستم سالتون میشتمیم شرکه جهانی ولایت بپنس بله آ آیا نه دلیل تلویزیون قطع از اه... تلفن فقط داشته لطف کنید رو قطع نه تلویزیون رو قطع تلفن فقط داشته بشین. از من تلفن داشته آیا در شما سلام علیکم من از میکردم تقریباً 5 ساله که مالیه میکردم بعد بله. پیش دکترای فوق تخصص و بعدم این ها فقط داروهای اسپر بمیدادم بله. نتیجه هم نگرفتم آخر کاری گفتن که ممکنه تراشه تراشه ها باعث سرفه کردن شما میشه بله. یه, دست... یه سالیه که میرم پیش متخصص معده درسته بله به داخلی تقریبا یه خورده از سرفه کردن هم کاسته شد به خورده بهتر شدم بله حالا آنه... مشکل از تراشه ها مهده هم بود از هر دو تاش هست از هر دو هست، هم ریه است هم ترشوه ولی بیشترش مثل اینکه ترشوه معده است درست من اون 5 سال پیشم آیه هایداری دوخانه مصرف می‌کنی؟ بله دوخانه مصرف می‌کنی نه؟, نه خیلی اصلاً خب خیل. بسیار عالی ان که خداوند شما رو شفا کامل بده ممنون از تماستون و 76 ساله 76 ساله خیلی ممنون از تماستون متشکرم میریم سراغ تلفن های بعدی تقضی دواله اونم که شما از دان میدونید چهارت تماس رو میگیریم و بعد میریم سراغ تلفن ها پاسخ‌های پاسخ های از رو میشنه از کرمانشاه شاه بله مرسی خانم کلانتری تری پشت خط کلانتری خواهم کلان تری عرض و سلام داره خدمت تو شباکه جهانی ولیت بپهم سلام حالی بخواهد باشیم سلام باشیم استاز یایی استازتون میشتم بپهم ببخشو دکتر من مریضی دارم. بله. بعد سال هفتاد و نه ازدواج کردمه سالم بودم. بعد دو سال اول زندگی خوب بودم بعد از دو سال که حامله شدم تو سمااری سرخ شد. کم کم استرات کردم که وسواس شدم به زناشویی. بله؟ مذرت میخوام بله بله؟ نزد بعد از هفت ما دوباره بعد از که سرخ داشتم حامله شدم و مطلق بهم دادن و در حالی که استراحت بودم وسواس شری داشتم تا اینکه زایمان کردم و حالا 8 ساله که وسواس دارم مراجع زیادم به دکتر رفتم تهران انجران شوکم پنج جلسه انجام دادم هیچ فرقی نکردم بهتر شدم نمیدونم چه کار کنم فقط به نزدیکی دوست دارم خوب خیلی ممنونم از تو سو متشکرم خانم دکتر انشالله که مشکلتونم حل بشه خب بریم سراغ تماس بعدی دوستان هم خانم از جزیره خاک از تو کار به کشور رفتیم به جنوب کشور. خانم صادقی، عرض سلام، وقتتون شبکه جهانی بلهیت بپمت. خانم صادقی، سر گیرانتون رو و صدای من از تلفن داشته باشید فقط. الو. الو سلام. سر گیرانتون رو معنی از تلفن سو دادن شده. درست بله بله، حالا بله سلام داخل استدیو. بله، متشکرم. بفرمایید. هفته قبلم مزام توشتم زنجیزم. بله بله. درشون مالیزی نواریش که داشتم، حاجاها اِطوسیر من گفتن که صبح سمبلتی رو با اصل اینا بخورین با, با اصل رقیق صبحگاهی بله. بعدم گل ساعتی با اصل بله. بر اَقص رقیق صبحواش به جای بله. ولی من من بنام به بنفطور اینا به چه صورت باید بخورم؟ مقدارش اندازه‌ش می‌کنم. بعدش هم در ضمن گل ساعتی الان هر جی که رفتم گفتم برام بیارین میگن فصلی شده، گیر نمیاد. من دونم کنم؟ وقت اشاره کدم گفتم دیابت دارم بعد طراسی مینورم هستم من الان هم به آنازر مدم آزماشمون گفتم که خیلی کمخونی شدید داری و چون دیابت دارم میترسم اثر بخورم چون دکتر دیابید من گفته هم بس. تو خورمه هم نخور نه خورمه اثر چون دیابتتون نوستان داری و به خاطر هم که تو مغزون بودتون گفتم تو ایمار آی درسته ای ای سطولک از دن بری درسته من یه که گرفتم با سخته گرفتم. دو بار میگم دوستم بخواید که صدا کنم. من عذر می خوام چون ما مأمونمون، عرفمون و با بینندگان عزیز یک سال من شرمندم. میتونید یا یاد تمام کردن یا مشکلی که جواب سوالو بسپرم امکان داره چون مشکل گرفتم. که واقعا سخت باشه چون تمام بیننده‌ها پشت خطم و تمام خطم مشغوله. بابت همه سوالات شما بله سعی بفرمایید سوالاتم ممنون میشم. بگم تو مر... سار دومو میره داره بپرسیم این پسارو موی زائد زیاد پشتی کمبرشت سینش اینها داره خیلی عذیتش میکنه بعد آجابا فهمدن گفتن که تخم و مرچه برای کار خوبه ولی خوب تخم و مرچه گرفتان سخته خواستم مثلاً بودنم میچرودی که دانشزده دارن باشه. چشم من هم بنیمپوردم. من نمی‌رسم. اول انگاری که من اتاریس رو بخورم با انگاری. آقای. اون هم بله. رقیق خیلی خوردنیش من نمی‌دوندم. بله, بله. دادن. چاش. من در من, من, من قبل ازی که تماس بعدی دوستانم رو حضور. من متعجب نشدم. خانم زین از کره. قبل ازی که تماس بعدی رو بخشاند و بعثم که دوستانم دوستانمون نوز کنید و سریع و فقط یک سال چون زمانو به جواب نمیده ما سه دقیقه هر از بینندگان بخوام فقط صحبت کنم دیگه زمانی برای فاسخ بویی نداری خانم زیان از چرش دخمات شما هستیم شبک جهانی بلد بله بپنید بپنید خانو بشیم مشکر من کنید جیان هستم ژ جی. جیان جیان جیان من درست دخلی دخلی بله روزو میشنو. در مورد تیرگی دور چشم از آقای دکتر زیای بپرسم که چیکار کنیم این تیرگی دور چشم از بین برشون خیلی مشكله برا. ببین تو خیلی ناجوره. خب ما چک از تماستون ممنونم. لوک کردید و خب خاطر سوالمون رو گرفتیم و ان که به قسمت بعدی بتونیم در شما شما عزیزان باشیم. خب آقای هیداری از ماهشر گفتن که زیاد صرفه میکنه. باید باید شون دارن را... اه... که گفتن رو مصرف می‌کنن بعد که میداست تو شما بیننده عزیز سن 76 ساله در سنی هستی که بلغم و سوده است پس تجمع مایعات اضافی بافتی زیاد عسل رقیق شده صدگاهی آب سیب شامگاهی باید تو جیر غذایی هر روز باشه تا سرفه های کم باشه اگر سرفه خشک مکرر داری یک دونه خرمالو وسط روز یکی از نبود کاسترد خرمالو که شونده سه روز پیشه روزی استکان میخوره سرفه های خشک مکررت قطع طازگیرت نمید، شربت گیاهی تینیان که از آویشن و مرزه و پونه و نعنا و مختصری گلیسرینه. یک قاشق پلو خودی تو دهنت میگی هم با آب دهنت قاطی میشه، قورقوره میکنی قورت میدی. سرفه های خشک متعبر قطع نمیشه. اگر منشأش قسمت حنجره و ابتدای نای و گلو نبود، منشأش از معده بود به خاطر اینکه جای چه ورودی معده شده. قر ریفلکس و برگشت اسید معده با محتویات یا بدون محتویات داره اینها هم دوچار خلطای اضافی و تلخی و بدمزگی صدگویی در فضای دهان میشن اینجا حتما بعد از غذا خوردن باید راه بری پس از اون حتما باید یک دونه سیب بخوره یا یک استکان آب سیب آمد. تا اسید معدهش خنثا بشه اگر کسی خانوم بود ویار شدید داشت یا ایشون که آقا هست اینجا باید چیکار کنم بعد از اینکه این یک دونه سیب خورد 20 دقیقه بعدش پیاره سیب زمینی یا یک دونه سیب زمینی متوسط بخوره که خاصیت قلیایی و بازیش چیه خیلی قویه خلاصید معده رو خنثی پس با این راه اون بحث طرحش میگه که میشه رو هر کدام من بعضی هاج اصلا سرپاهاشون ليش کنم این دیتا نمی میشه به حساسیت به پروتئین لبنیات ها اینا نباید شبا این ما تصدیق بخرن اینجوری اینطوری هم بگن خا که همون که گفتن که علاوه مجزی اعصاب نمیشه اسمشو چون قبلا دروازش سال ازدواج کردن اما متاسفانه وقتی که بعد دو سال اقدام کردن برای بچه دار شدن سر سه ماه حالا صدقه جنین داشتن و خوشبختانه بعدش دوباره که اقدام کردن فردانشون سهی سالم به دنیا آمده اما نسبت به مسائل زناشویی یه مسئله خیلی خاص دن هیست ساله و تر دعمانم بودم متاسفانم از که جاوزم. شما مادر گرامی استرس شدید و افسردگی شدید بعد از سخت جنین برای شما حاصل شده یکیش به خاطر چمخونی آرزیه چون تو سن من تهیز هستی هر ماه 70 الی 80 سی سی خون کم می‌کنه سخت جنین خونریزی زیاده بین 300 سی سی تا 400 سی سی خون کم کردی بعدم بین این سخت جنین تا حاملگی بعد برای اینکه بدنت رفرم بیاد باید 3 سال فاصله باشه ولی شما بعد از هفت ماه حامله شده یعنی ضعف عمومیت شدید شده خب بعد از حاملیگی الحمدلله الان اولاد داری خب شما دچار خستگی جنسی ناتوانی جنسی و افسردگی یعنی نگرانی نسبت به مقاربت میترسید حالا به برحرکت برکت دیخته بشه و دوباره بارداری ناخاسته تیدار اصلا به خاطر این نگرانی مستمر نسبت به بارداری میل مید جنسیتون نسبت به شوهر گرامیتون کم شده حتما باید بیماری خستگی جنسی و ناتوانی جنسیتو درمان کن آیا؟ کاهش هورمون استروژن زنانه هست پیش یه متخصص قدر میری هورمون استراجینت رو درست کنید آیا قاعدیگی های نامنظم داری؟ حتما باید با چای رازیانه یا سه دونه فلفل سفید روزی یک بار اینجا باید قاعدگیاتو منظم کنید تا خون روشات زیاد نباشه و کم خونید بیشتر نشه و افسردگی و خستگی جنسی شدیدتر نشه چون مایی دلسردی و رابطه سرد بین شما و شوهر گرامیتون میشه در این دنیای با نفسا هنر یک زن چیه؟ که قلب شوهر همیشه تو مشتش باشه چه شوهر در حضر باشه چه در سفر پس باید این خستگی جنسی و این نتوانی جنسی رو درمان کن. خیال پردازی نکنی. این تو بحث وصفاسی یا کسی رو شک نیست. این دو قسمت قبل رو باید درمان کنن. تو بحث وصفاسی درمانش یک کلمه است. نباید محل بدی. چون عامل ترس واقعی نیست. عامل وحشت واقعی نیست. بعد یه نکته در مورد بسواس من بگم هفته پیش بعد برنامه یه سر تماس اومد تورو دقیقاً بعد برنامه پاسخ میدیم یه دو که تماس داشتیم در مورد بسواس من قبلا تیکه سواله سال خانم صادقی بپرسم خیلی سوالی که بودم گفتم بسواس حالا شما گفتید به عز وجود شیطان و فریب شیطان آره شیطانی شیطان القاء شیطان میگفتن نه ما میگیم مشکل داریم نمیتونیم حلش کنیم مسئله غرقاتش که شیطانی اونم کلی خودمون استعیم کنیم با خدا باشیم ایمانشوشیم یه تردک کار کچی که در این بابده در فرمایش امام صادق علیه السلام عمل کنیم در ابواب مقدمات عبادات در وسائل شیه جلده یک امام صادق علیه السلام میفهمد محل نده به وسوسه چون وسوسه از القاعت شیطانیه و انسان عبدالشیطان میشه ما بناس عبدالله باشیم نه عبدالشیطان اگر کسی میخواد عبدالله باشه و باقی بمونه باید اطاعت از الهامات ربانی کنه چه کسی الهامات ربانی دریافت میکنه؟ معصوم چه کسی به ما تذکر بجه و به موقع میده؟ معصوم حالا امام صادق علیه السلام به من شما میگه پیروی از القاعات شیطانی نکن چون وسوسه و کسی شک بودن از القاعات شیطانیه عمرت تلف میکنه سرمایت تلف میکنه پس های فهمونی؟ بعد هیچ وقت به یقین نمیرسیم از کسرت عمل حاجه خسته میشه چه وسپاسی بس در لفظ باشه چه وسپاسی بس در تاهرت نجاست باشه و خیلی چیزای دیگه بز. حتی تو وسپاسای فکری به اسطلاح پزشکیه که در واقع تشرید خیالاته نه وسپاسه و وسپاس و کسی را شک بودن خیلی چیزا را زایه میکنه اطلافه زایه شدن و زایه نمودنه امام صادق یا و این از حرکات شیطانیه فیرویه القاعت شیطانی نکن تو عبدالله باشی نمیشه آدم پیروی کنه تو عمل از القاعت شیطانی بعد خیال کنه عبدالله بحق نمیشه تو عمل محل محمده داروشنه تو ما, تا ما تا ها باید نمی کنم دارو مصفی داشته بردیم دارو ولی در واقع دارو نیست در تخصصی دارو ما داروی واقعی داریم دارو نما داریم, دارو نما داریم. مسکن داریم اونایی انتظر تو فزشکی جدید که می اینا در واقع دارو نماست یه جوهی تو می کنم این دروار می که طرف تلقین کنه. بله من چون این داروی رو حساب می کنم بله داره. بله آزران همینه برای این بزرگوار اصل جوابی گفتم اگر اهل مطالعه هستین اهل تحقیق و پژوهش هستین کتاب ارزشمند وسوسه و وسواس از نظر اسلام و علم روز نوشته محقق توانا شیخ محمود ارگانی مطالعه کنید. دیویست صفحه چپ در زخائر شیعی قومه یک برادر گرامیشون هم دکتر روانشناسه که حدود 30 35 صفحه این کتاب هم از نظر روانشناسی بالینی بررسی کرده. صفحه‌یش هم با آیات روایات. خیلی کتاب قشنگه. خب از سابقه جاد نزد دکتر که هفته پیش هم تماس گرفته بودن تجزیه و تحلیلی داشتید. گفتن که حالا اون مقدار و میزان مصرفی گل ساعتی اون با به اینکه دیابت و تالاسمی مینور دارن، کم خونی شدید داشتن. مصرف اصل رو ترسیده بودن. بگید که حالا بعد اصل طبیعی قندخون و بالا داره. اون اصل های صنعتیه که سالی سه تن یعنی سه هزار کیلو دولت به زنبورگارا شکر میده چون تولید اصلشون صنعتیه سال در دازمه دار اصل تولید کن اما اصل طبیعی که از شهد گل‌های غیر سمی خوشبوهه کنگ خون بالا نمی و این تو پزشکی و عسل درمانی ثابت شده شده. می کتابای تخصصی عسل درمانی مثل مهندس صالح نجات مطالعه کنن. یا تو بحثای زنبور عسل پروفسور فون فرینش برنده جایزه نوبل 1970 ترجمه مهندس شهرستانی مطالعه کنن. و کتاب دیگه هست حتی از بانوان محقق کتاب در اصل درمانی هست یه سری چیزه هست اصلا قندخونت بالا نیم داره خونسازم هست مثل چی؟ مثل سیب سیب درختی مفرح قلبته ملین مزاجت هم هست مثل چی؟ گلابی ملین مزاجت شادابی پوستم هم میاره مثل گیلاس درمان تبه کلیت میکنه تونتون دستشوینه میری کلیت گرم میکنه همچنین خستگی جنسی هم خوب میشه. چون دیادت بگرسی لفظم برمیشه چون دیادت هشت تا بیماری مسلم داره یکیش هم خستگی جنسیه و نتوانی جنسیه هست در مورد همین هم خیلی سوال داشم بله بله حویج زرد ایرانی که مشهدی میگن زردک تو روایات میگه جزر عربای عراق میگن جزر خب بیاتون باشین سیب، و گلاوی و گیلاس زردک قندخونه بله نیداره بگید چرا به خاطر اینکه که ماده داره به نام با باستین سربیتل 70 درصد سربیتل تو بدن میسوزه و تبدیل به کالوری و انرژی میشه هرگز گلوکوز تا قند خونت بالا نیده ما در کتاب های تخصیصی میره درمانی استاد دانشگاه تهران، دکتر محمد صادق رشحان، هم در قسمت گیلاس هم در قسمت سیب داری تو کتاب های تبل معصومین دکتر لبید ویفون تو قسمت تفح مطالبی است که اونجا توضیح دادیم برای آیا خواستم بگم که بعضی دکترای محترم حواستشون به سورویتول همچنین حواستشون به اصل طبیعی نیست بعضی حرفایی که قرب شرق زدم این بزرگوارو تکرار میکنم دوست من اون بویز دارو که رو سهی تقریبت اصل قاشق چای خوری پودر سمبلو تیب و یک قاشق پلو عسل اصل طبیعی شد گل ساعتی, ساعتی چون ترخه حالا گیر نمیاری اتونی قطره پاسیپی از اون قوی تر قطره والی فلور. هر دو سخته طرح جنریک داروگیایی ایرانه اتونی هیدرالکولی گل ساعتی بخری که ضعیفه قطره پاسیپی اتونی قوی شده والی فلار قویه بعد دارو خونه بخورم دارو خونه هم داره. حتی اگر فامیلی کسی تهران دارین میتونه به پست دوست بفرسته از مرکز تحقیقات داروگیای ایران بلوار کشاوست جمع به دانشگاه تهران جمع به بیمارستان سسم از طریق دوست فامیلیشون رسیشون بفرسته آره، یه, یه ما باید سواعت ببخشیم چون خیلی تلفون هستم دوست هم تو گوشه من خانم چون دارم بار دارم میپ من خواح چشمانی ولی من مجبورین در وارد موهای زائد پسرشون که گفته بودی در طریق تخم موچه یه راهکار خیلی سریع به وجود اومده تخم رو محمد مؤمن حسینی در تحفه حکیم مؤمن گفته درسته؟ از متخصصین و اتباع دربار شاه طهماسب صفویه درست که زمانش هم چاپ شده کتابش جمهوری اسلامی هم چاپ شده و تو بیابان که ببینین گردش علمی سهروردی کو نرادی اینم داش آب که بریزن یا وقتی که وارون بیاد، بابا میگه نمیتونه ما رو تو خوچاد کنه. باید اینجا باید برام تضعیف کنن پیاز مو رو. یا پیازای مو رو از دین ببرن. اینو خدایان دار درمان کاری بکنن موها که میریزه همون کارو. یا ازون میشن از دین بره از دین. کاری کنم پیاز مو از دین بره. میتونن با درمان‌های گرون مثل لیزر درمانی اینها انجام بدن. یا میتونن با چیزهای دیگه که پاک خاصی هست داخلی هم داریم، خارجیش هم داریم. دیگه منالا اسمین دارم که تذویر نش. خانم جیان از کرج، ان الله که من фамиلیشون رو درست تلفظ کردم. خانم زیان یعنی جیان. شیر و بیشه. اه خب پس خانم حضرت خانم شیرزنه. خب خانم جیان از کرج گفتن که در مورد تیرگی دور چشم این مشکل خیلی دارن حتی اینزاره که به صورت عادی بعضی مثلا بهرهاش بعد هم میکنن یعنی کم خونه یا, یا ببخشید جسارت میذارن میگن مثلا طبع متاد این حرفا میذارن در مورد اینکه بله اگر اینجا ای یا مایل بسیار باشه بله در بحث دخانیات پیشرفته نیست اما غالبا در حضرت خانوما کم خونی شایع الان نصف بیشتر جمعیت زنان ما در ایران از کمخونی فقر آهم رنج میبرن مثلا حکستان که با میشن این کلند دو چشمان سیاه هست بله, بله اینا حتما باید زیر نظر متخصص قرص آهم یا قطره آهن، یا کپسول آهم بخورن یا از اون بهتر ایتون تو جیره قضاییشون عسل، خورما آف سیب بزن که عوارزم ندارن یک دیگه از کمخونی نیست بلکه افت پلسمای خونه مثلا جوش میزنه قصه میخوره حسن هر چیزی بخصه علکی میکنه گرگیره لفتی داره یک و دو میکنه به خاطر افت پلسمای خونشون هجما یک مطبه بدنشون همه مثل آب خورده بشه آبش کندشه افت مایات خونی این چشما هم میره تو گرد گیجگاه میره تو گود، لفه میرو تو گرد اینجا هاشون رنگش تغییر یه بار دیگه هم هست نه پیش یه متخصص قدرت میرم نکنه پرکاریه تیرهی داره حالا چون علل مختلف داره گایی هم الگه نزخ کنیم گایی ممکنه یک بکس بذارم درم محمد علی کلی مثلا نگه درم مثلا اینجاشون اشون چه بود چه اونا تو بخص اورجن خب مجرد دارم خیلی نزخ کنم واقعیت همینه که دوستان تا من منو کشتن و شما بزرگا هم و دوستان و تا فهمون کشتن. کاظم اینقدر گوشه من میگه تلفن تلفن فقط میگه تلفن فقط این تلفن رو قط میکنه آقا با این ما امودین هشت تلفن شما دارید به ما واسط کنین. 0511225415032254160922541 چیزا نیازی هم ندارم بهت چهار تا داره زنگ می‌خوره. خانم موسوی هست. من فکر می‌گام خانم موسوی از همون موقعی که چهار تا خط داره شد به گفتن خانم موسوی سلام می کنم شرکت جوانی صدای شما رو داریم در خانم موسوی صبر گیرندتون ببنید من از تلفن داشته باشید سلامت باشین باعث رحمتو الو سلام بفرمایید در خدمتم صدای گیرندتون رو لطف کنید بگردید خواهرم من واسه من از تلفن داشته باشید مخواستم بگم در مورد فشار خون من الان یک سال که فشار خون دارم باله. فشارم 19 رو یازده. 17 رو 12 16 رو 11 اکثر آوار اینه فشارم بعد, بعد اکثر آوارم در بسر خیلی شدیدم بعد قندم دارم قندم دارم در مورد خطره یعنی 111 قندم باله. بعد میخواستم بگم که من الان باید چه داروی باید استفاده کنم دارو الان داروی فشار خون اینا میخورم همگه اصلا فکر کنم خلاصش اصلا پایین نمیاد دواج شما فشارتون پایین نمیاد. نه پایین نمیاد. راست نمیدونم باید چیکار کنم. در خیلی شدیدم هستم ثانیه. دارم در استفاده نمی کنم. کوبنده. مثلا دکتر بلوک حجات الیزاخان میخواستم بگم آقای دکتر اجازه محبت کنم بگم من باید چیکار کنم. حتما حتماً حتماً حتماً ممنونم از خودتون. بهتر بشید خانم قدیری از مبارکه اصفهان یه لطفی بکنن دوستان رو بیننده عزیز اگه گندرو ببندید صدا در تلفن داشته باشه خیلی خلاصه و سعادت مثل من سریع صحبت کنین که بتونیم پاسخ‌ها رو از زبان اساتید داشته باشیم خانم قدیری عرض سلام در خدمتتون بفرمایید سلام علیمت بشین متشکرم بفرمایید خانم قدیری اجازهتون دارید بفرمایید بله سلام علیک خاطر بفرمایید سلام ولی خواسته نباشی خانده را که درست ها بس میگیرم بله من الان که دران از رجی میکرم از اینکه که همه بله آه به خیلی دکتایی های راستم دکتایی چیز چیزی خیلی کشتم فقط میخورنم و دخل کنم دعواده هم که دست بشه اونم از شاپا دست بشه درست میوره هم که چیز کردم هجامت کردم جرا... جلسه، پنج، جلسه، تو چه چه جرا چند لحظه به ادامه شد از خریدن از حاله از هیچ غذایی عمل بشه ان شاء الله که ان که برای سوپ جو اجاز. فقط هم همینه با کاغوی دیگه دیگه, دیگه نخوردم درست متفکرم من چاش چشم, چشم. چشم. که بهتر بشید خانم قدیری ممنونم از تماسیتون تماس بعدی رو اعلام کند که خانم نیکنا نام از سهرانباز هم این آقایون نیستن پای برنامه فقط خانم پای برنامه خانم سمازم. نیکنام از اون سلام بر خدمتتون شد که بفهمید سلام سلامت بشیم بفهم با عزوز سلام خدمت آقای دوشته بودم با چیم باشدم اینجا اینکه من فرزند یک سالهی دارم بله که از اول به روند وزنگیری ایشون خیلی کم بود و. البته الان قدش خوبه دورت فرش خوبه ولی وزن خیلی کم میگیره همه دستورت قضاییم هم رایت دردم در ملتی ویتامین و آهنم بهش می‌دم تمام تمام آزمایشاتم دادم بچه کاملا سالمیه میخواستم از آقای دکتر کمک بخوام که ببینم من چه درصغه غذایی دیگر رایت کنم حقا. که به وضعیت ایشون کمک بیشتری بکنه ممنون هلان... هستم انشالله که فرزندتون سالم و صحیح و سالم بزرگ بشند و خیر برکت برای شما بیاد خب تماس آخر رو برای ما بس کنید خانم من امیدوار بودم آقا باشه این تماس آخر که ما اگه آقا بود اگر آقا بود من میذاشتم چهارت سال پرس. <تصفيق> رو پرس خانمه حسینی رو برس کنی برای ما خانمه حسینی عرض سلام دارم تو شاکه جوانی برای بفند ارو. سلام خانمه حسینی بفند سلام نباشیم نه خیلی شما بفند برای شما نمیگیرم برای شما نشدم بعد الان عمل آی انجام دادم بله تو داری ترگیانه رو بله بعد الان میخوام ببینم که الان حدود دو سه روز دیگه میخوام انتقال جنینمو انجام بدم و میخوام ببینم چه نواد غذایی استفاده کنم که تاثیر براه... داشته باشه توی عملم به خاطر اینکه میگن عسل و کنجد و اینا باعث سفت جنین میشه حالا میخوام شما لطف کنیم که بگیم من چی کار بکنم رژیم غذایی برای این رو بله بعد اینکه ببینم جنین بمونه که سفت نشه من چه انجام بدم چه رژیم غذایی داشته باشم متکلم که شما صحیح سالم بیاد چهار سال رو خیلی سریع این بعدی سریع از مشهد گفتن که در فشار خون فشارشون به و اینطوری و این روی مصرف دارو هم داشتن قند پایین هم دارن که گفتن دارو اینجا شما بزرگوار نمک برات سنمه شوریا خیارشور برات سنمه پله ها بالا پایین رفتن زیاد بده تو پله ها مکس کنیم مشابه های گازدار ها شیمیایی شیمیا این همه کشارکونه بالا میبره این مال فشار انقبازی قلب فشار های انبساطی قلب اونجا جوش زدن برات بده خودخوری برات بده قصه خوردن برات بده اونی که هر دو رو با هم تشدید میکنه و تپش رو بالا میبره آب نیموترش رو لیمه نیمو امانه خب اینایی که بده براش باید ترک کنی تر کنی بعد به همراه نهارت دوتا میوه گریفرود آب بگیر میشه یه لیوان آب گریفرود تو دارابی یه لیوان بعد از قضا همراه قضا یواش یواش بخواه به همراه شام یک قاشق مروخ تا یک قاشق پلو خوری پودر فشار خونتون میاد به 128 و نرمال میشه خونتونم فرمودن خون 111 قند خونه 11 قن نیست. شما بیماری قند نداری. از 90 اگر سن بنده خدا 35 سال 40 سال باشه 90 تا 110 نرماله یکی اینگار بالا از اینجا به بعد باید مواظب باشید شما قنده شیمیایی نخور قند شیکر از اینجا تا قهر طبی های گازدار شیمیایی نخور قضاهای چرب و چلیس نخور اصلا قنده خونت بالا نمید بالا اگر دوست داری 15 واحد بیاری پایین یه مغز بایدون تلخ صبح یه مغز بادوم تلخ شب بخور. 15 واحد از خانم‌ها خانم به برنامه دو تا برنامه قبل، برنامه قبلی رجوع کنین به سایت www.belayattv.com متن اون برنامه میتونید حتی صوتش و حتی تصویرش ببینید بیماری دیابت ندارن. فقط میگه مواظب باش، بدخوری نکنن. مال اون بحث گاترت یا قنباد به خاطر کمبود یاد چون که فشار خونداری نمیتونم بگم نمکی یاد دار بخور اما میتونی زرگت بخوری؟ درست زرگت سرشار از یاد سوپ زرگت میتونه هر شد یه باش خواب بخور خانم قدیری از مبارکه است فاهم گفتم پونزده سال متاسفانه اگزیما در پا دارن دامادشون هم هست که اسکاف دست دارن اجامت که و دوبر این بزرگوار هر غذایی که دوست دارین شما مادر پسر میتونین بخورین به خودت نده چیزایی که اگزما رو تشدید میکنه گوجه فرنگی ناراست یا یعنی نیمه ناراست به گوجه فرنگی دوم پوست کیوی که پرزه هست هم اسمیه راجابا هم اگزاما رو تحریک می کنه تو جمعه بارین و یکی دیگه پوست بادون زمینی هم اگزاما رو تحریک می کنه هم آسمیاره یکی دیگه پرزبه که قهوهه یکی دیگه دونه های میوه کاج خب این هایی که اگزاما رو تحریک می کنه و آسم رو تشدید میکنه یا ایجاد می این رو باید ترک کنیم تو خردنیو به عنوان چاشنی، فلفل، سس فلفل، سس انبه، باعث سمنه نباید بخورید. توی مواد شوینده، صابون و شامپو نباید پر اسید باشه، چه خودت چه پسر. نباید جایی که اگزما داره لیفت بکشی، کیسه بکشی، نباید این کار کنی. این صابون یا شامپو یاد چهره. یه بار کشورش کافیه. چون پوستت نباید خوشک ملتحب بشه که بعد حالتهای خوردگی و سپس مایعاتی میزنه بعد خارش میگیره بعد هی میخارونه دلش آرون نمیگیره انقدر میخارونه تا خون بیاد بعد آفونتهای باکتریایی میکنه به اصطلاح علمی این سیکل معیوب تکرانش پس تماد چشمی یک دست تتراسیکلین یک بار رو این قسمت میزنید مومن که باکتریه اردن یک بار بعد از این با کف دست بخارونیم با ناخن نخوانیم خون نیاریم روش کیسه و لیف نکشیم از صابون و شامپوی کم اسید استفاده کنیم کاهو خوبه اما در تقویت پوستتون و سلامت پوستتون پنج ویتامین لازم دارین ویتامین آ ویتامین د، ویتامین سی، ویتامین دی، ویتامین ای خب هویج جزد بی تا کاروتن داره و اسید کلبیدریه که مهد ترکید میشه ویتامین آ زیاد vi景 میشه و همثل مورت چشمه خوبه همثل پوسته ویتامین ده تو لیمو است، هست شبه یه لیمو بخور ویتامین سه تو پرتغال شیرینه با ناهار یه پرتغال شیرین بخور تو دست ویتامین دی روزی ربع ساعت یعنی 15 دقیقه در معرض نور مستقیم و آفتاب باش پشتر هم لازم نیست باشی تا آفتاب سوخته ای رو کل روز پونزه دقیقه در نور مستقیم و آفتاب باش ویتامین دی بدن تامینه. بیتامین ایه e در اکثر غذا هست کنسرو ها فست فود ها، سوسیس کالباس همبرگر اینها رو مؤمنان ترک کن چون در اثر حرارت ویتامین ای که یک آنتی اکسیدانه از بین برسه شما هر چیزی دوست دارید میتونه بخورید خانم نیکنام از تهران گفتن فرزند یک ساله‌ دارن و ولی از اولی که فساد دنیا اومدن راهوند وزگیریشون خیلی کم بوده وزگیری فن همه مولتی ویتامین تام اینا و آهن اینا بهشون دادن آقا وقتی حالا یهجوری داشته باشن که فرزند... مادر گرامی این فرزند شیرخوار که تا دو سالگی ان شاءالله ده شیر میدی باید بدونه ده دقیقه اول شیر مادر بیشتر آبکیه ده دقیقه بعدش که بشه تا 20 دقیقه اون ده دقیقه دوم اکثر املاح و ویتامین ها رو داره رضا از هر سینه 20 دقیقه بذار دچه بخوره تون عوض نکن که آبکی از این بخوره آبکی از این بخوره این یه نکته که تو شیر دادن به کودکان شیرخوار باید وعایت بشه تو دوم چون شیشمایگی به بالاست شما فرمودی یک سالشه از ریزمغزی استفاده کن ریزمغزی که هم ملین مزاج کودکشه کودکش یو نگیره مزاجش هر روز کار کنه هم فربهی در کودک بیاره اما چاقی مفرد نیاره. مثلا یک دونه انجیر سه عدد مغز بادام شیرین سه عدد بادام زمینی بدون پوست روش این سه ترخش هنگرنده یا ریز میکنه له میکنه حالا قاشق قاشق چای خوری کل 24 چه ساعت و میکنه بچه شون میشه از زربزاری و چوب کبریتی درمیاد اما در این حال بشکه یا چقالی بادوم چاق چله یعنی چاقی مفرد هم نمیشه. نمیشه چون لاغری مفرد هم بیماری هزار. روایات شمگه بیماریه آدم چوب کبریتی باشه زرد و باشه هزال با هدو زن باشه. چاقی نفرت هم بیماریه که آدم توب بشه باشه باشه اونم بیماریه حتی کودکان چاق اثر سکته در اینا زیاده و عمرشون کتره اما فرده باشه اولادتون نه زرد و باشه نه, نه متوسط. بدنش رفوان باشه ایک یکی عدداره باشه یکی از های دیگهش مثلا انیست با نیلوفر آبی یا مثلا آبی با اثر محشره یا مثلا فرض کنید که انیسون که بادیان رومیه بادیان هندی هم میگن با زیره اونده اینها هم چی میاره سر میتونن با, با, حاکم با, حاکم. دلده دلده. با مثلا مغز خیار دلست. یه قاشق چاشنی میتراشه یه دونه گوشت خورما می دون خدما پوزیشن میکنه گوشتشو با همین یه چای خوری مغز خیار له میکنه هم یواشواش بعد بچه میده اینم فر بهی میاره موارد زیاده ما تا 9 مورد در طب المصومین توزی دادیم ان که وقت کنیم کامل توضیح بدیم خود موسونی از سهران گفتن خف سال است که ازواج کردم تا اصلاً بچه دار بشن عمل آدیفت کردن دو روز دیگه انتقال پیدا میکنه به رحم خودشون رو رژیم غذایی برای این چند روز و بعدش و اینا و گفتن که عسل و اینا اگه مصرف کنی واسه سقط جنینشا رو دیگه ان خدا به شما و همه مؤمنین و مؤمنات زویه طیبه عنایت بفرمايت تمام مادران عزیز بدونن که در ماه دوم و سوم حاملگی اگر بچه یعنی جنین اگر جنین وزن نرمال نداشته باشه سقط میشه لذا ماده از سوء تغذیه نداشته باشه رشد جنینم باید مناسب باشه شما بزرگوار که لقاه مصنعی میخواییم کنین مؤمنان اینجا باید رژیم مقوی مثلا یکی از تقویت کننده های تختان و تخمک و ازدیاد طول عمر تخمک و درمان کیست تختان و درمان لیزی و رحمی مه. چیه؟ کاسنی شما روزی هفت درگ کاسنی بخور یا یه قاشق مرب بخوری پودر کاسنی یا یه استکان عرق کاسنی طبیعی چیزای دیگه که مقردی هست مثل چهار مغز مثلا مغز بادام شیرین درختی مغز پسته مغز فندق خام مغز بادام هندی صورت خام باشه یه موش از این مخلیط بخوره هر روز با عنوان یک ریزم و کامل اگر تمر برنی بود هفت عدم میتونه صبح بخوره میتونه بعد از نهار بخوره میتونه بعد از شام بخوره اما دلیل نداریم ها که عسل سخت جنین بیاره دلست. این حرف مردمه حالا من احترام میزنیم حرف مردم احترام میزنیم اما دلیل نداریم ها بلد. درست. خب تلفن هایین بخشمون هم تموم شد بریم سراغ تلفن هایی بعدی اون 3511 2225 41 13 2225 41 53 و 2225 41 69 پاس و خوش شما از قبل از اینکه حالا تلفن ها رو برای من ورس کنن و قبل ها سریع میخوان تلفن به هدیر ورس کنن بگیم یه مشکلی در ما داریم اینجا اینی که شما خارج از وقت برنامه تماس میگیرین حالا خارج از تایم زون هایی که اعلام می کنین مثلا الان این برنامه داره تکرار به صورت هر ساعت 3 شب پخش میشه خب چه روز هست برای دوستانی که در اروپا زندگی میکنن و همون ساعت تماس میگام با شما تلفن ها و خب اینجاست ساعت 3 بچا در حال استراحت هستن و مجبوران پاسپورت شما از زبان باشن الان که این برنامه پخش میشه فارغ از می این پاسپورت شما از زبان باشین حتی بعد از برنامه خیلی سخته که بتونیم جواب تلفن های شما از زبان رو به این دیگه بگم بگم, بگم. نه اذا حسين لفظان یکم بد میشه گاهی بعضی یا کوچیکه بله در خانم‌ها و دخترها گاهی هم بعضی آقایون که ازدواج کردن بیضه هاشون کوچیکه حالا ما کارخونه توسعه بدیم و تولیداتش هم وفور داشته باشه و سالم تولیدات سالم با کارخانه توسعه یافته میشه بله شکوفه خورما یعنی طالع خودش رو اگر بخورن و یا عطر شکوفه خورما <مام> این مشکل هم حل میشه شما برای ما عطر شکوفه خورما یه بار دید دست سننم برای این برای این که شاده آواری خوب خوب میرسه دقیقا به بعدی خانم کرمی از کرمان زمان هم خیلی کم مونده حش پانده دقیقه الان دیگه رو ۱ ده دقیهنتهای برنامه تلفناتونو سرید و خلاصه به ما بگی کهتون پاسخ های داشته وخوا کمی از سلام در آتون. ا، که درو سلامت باشی متشکرم. برای خودت هم میشه بله بفرمایید. عصب چه طور صورتت شده؟ بله. بعد درشنیی تبودی ندادن. آخه، البته تو داره دیگه برای ترتیبی کردن یه در اثر حالا چه چه شدید؟ صد در آخر یه گوشتاد شدید. در صبح بالا شدم، که به صورتو کلا شده. خب ان که خداوندا به شما صحه کامل میدن. من ممنونم اصلا خواستتون متشکرم. سه تماس دیگه میتونیم بگیریم. بله آقای اسدپور آقای هر چقدر شما برادر من دوست داری فال مشکلی نداره. آقای اسدپور شاید که جانم ولایت در آقای اسدپور سده گیرند نصیب سلام آره. علیکم. سلام آره. علیکم. سلام آبا سلام علیکم بزرگوار داره از تو بفهمید خبست میکنم خبست حضرت حضرت حضرت زیعی محترم و شما مدری محترم سلام سری بله من یه فرزند پسر دارم سیزه ساله شد بله شب ادراری دارم بله بله بعد چند سالیم دکتر بردیم اغلب نظرشون بعضن. اینکه ایشون سیستم اثر مسانش هنوز رشد نکرده داروهایی هم که دادن کم و بیش مصرف شده ولی تقریبا تحسی نتیجه نگرفتیم من از حاجه خาهشارم اینو قاطعون من... این من, ای من خودم مشکل دارم تقریبا 35 ساله من آرتروز هم داره. اگر مقدور بود ممنون میشم. بله خواهش من در مورد خیلی صحبت ها کردیم چون تا نکته هم در همین آرتروز زانو و پا گفتن. میگم برنامه قبل حتی اگر بتونید ببینید کامل یه جامع و کامل دادن. آخرین تماس این بخش تماس دیگه بخش خانم حسینی از زایدان آقای کازمی من دعوان میکنی دو تا خانم حسینی در خیمتراتون هستیم شاید که جهانی ولیت خانم حسینی Hello. Hello, بفهمد. خانم حسین. داریم. سلام بفهمید خانم حسینی سلام سلام بله دارم بله, بله. بله. دوستان دوستان زب... که تفتندگی رحم داریم باید عمل بله. داشته باشم من باید از عمل هم می و گفتم که اگه و من را راستان های من نمیشم ممنونم هستم تماس آخر این بخش من متوجه فامیلشون نشدم خانم افسانه از کردستان تماسشون رو هم بست کردم خانم افسانه اراد سلام در خدمت شما شرکت جهانی سلام سلام بدم سلام علیکم ازتون دارم خانم در بپرسم من مادرم یه قاصی رو داره چه سه ساله که اینطوریه ولی هنوز هر وقتم که میره دکتر بهش پماد میدن ولی رفت نمیشه میخواستم بپرسم یه داروی یه چیز خیلی ممنون متشکرم. ما چهار 4 تا سوال این بخش رو پرسیم. ما اگه بتونیم سری پاسخ بدیم شاید اگه دو تا تلفن بگیریم بگیریم. می کریمی از کرمان گفتن اعصاب سمت چپ صورتشون فلج شده بواسطه یه گوشتند شبانه که صبح گذاشتنم تشخیص. اینجاست که میشه متخصص گوش و حلق و بینی ببینین شاید عفونت داخلی گوشتون شدید و عفونت درمان نشده. یک احتمال دیگه است مایع اضافی کنار مخچه زیاد شده فشار اضافی روی عصب مخچه میاره یعنی عصب هفتون که عصب صورتیه و مسئول ازولت فک و صورت و لبها و ایناست اینجا این دوتا باید چکشه یا فشار اضافی این مایه رو از روی عصب صورتی هفتون برداریم بشه متخصص مغز و عصاب بر. یا اینکه این عفونت این گوش داخلیه باید برطرف بشه باید بشه متخصص گوش حلو بینی بریم هم این مشکلشون همشه آ میتونیم خوش کنیم اما باید منشأ بیماری رو پیش این دو متخصص بدداین ببرم میشه با گل است خود و افتیمون مایات اضافی مغز رو خوش کرد. و میشه عفونت گوش داخلی رو با چکاندن روغن بفشه خالص به بیرون کشید. شب اول سه قدرره شب دوم پنج قطره شب سوم هفت قدرره. همو باید منشأ افونت از بین بره منشأ تجمعات اضافی هم که فشار اضافی میره و عصب حستون آب بینه آیه اساتوری از کرش گفتن که فرزند پسر 13 داره که شب اجزاری داره گفتن دکتر و دکتر هم گفتن از اون مسألهشون روش نکردن دوران طبیعی نشه اجزاری کودکان دو علت داره گویی منشأ ژنتیکی داره اگر زن و شوهر گرامی ایستاده مقاربت کنن و علاوه بر حرکت برکت بریزن بچهشون دوچار شب ادراری جنتیکی یعنی وراستی میشه. اونجا باید درمان جنتیکی بشه. یه بار دیگه نه. مثلا تو تب شدید پنسیلین زده. یا رشد کافی عصب مسانه نکرد. اینجا از ناف بچه پایین تر یه مقدار قسمت باز عصب مسانه رو ما در تخصیصی عصب و سانتی متر سانتیمت کتا میکنیم. بچه دیگه کنترل ادرار داره تا پدرش از سر کار برای گرده مثلا بچه رو عوض کنه و مانندی بله راهکارهایی هست که شب ادراری بچه رو کم میکنه و کم کم مات میکنه یکی این که تو شبها از اول مغرب به بعد بچه تون کافین نخوره چای، قهوه، شکلات کاکائو نسکافین نخوره دوم شربت نخوره ثوم هندوانه نخور چهارم خربوزه نخوره چیزایی که دیارتیکش بالاست باره مدره ادرار آوره قبل از خواب دستشیه بره سهر یه بار دیگه بیدارش کنن دستشی بره این مراقبت ها رو اگر انجام بدی شب ادراریش خیلی کم میشه اگر جوشانده یه. پوست قهوه‌ای سخت چوبی مغز گردو قهره یه دور مغز گردو که مردم میشکنن میزن سه اشخالی این پوست سخت قهره ی مال بالمغز گردو اینو بگیرن هفت هشتو شد یک قوری کوچیک دم کنن یه و بچهشون چند سال بود؟ یاده سال. سال نصف استکان نصف استکان جوشانده یا دم کرده این پوستو شله. در سه شب پشت سرم بیماری چک میزت، ریزش بی اختیار کودک هم خوب خودشه. باعث پرهسات که گاهی وقتا می اتفاق میفته. اینا جواب بده. بله یا دیابتیایی که نوسان قند خون داشتن چک می، اونا هم جواب. این هم جواب. خانم موسوی از زاهدان گفتن ده سال پیش ازدواج کردن، یه فرزند دارن و دو سال قبل هم اردام تنوسا جنین داشتن. حالا مثلا دکتر به دکتر تشخیص چسبندگی رحم بدن و از عمل هم می میترسن. این چسبندگی رحم هم خیلی شایع است. بله بله خانم ها کافئین زیاد نخورین که هم کیست تخمدان میگیرین هم لیزی رحمی و چون افونت های مجاری ادراری و دستگاه تناسلی در جنس مخالف دختران و زنان بیشتره، لذا همون توصیه‌ای که در جلسات اول کردیم، وقتی میرین دستشویی، پایینتنه رو کلش بشورین، هر سه مخرج رو محل حواشی، با دو طرف کشاله های ران و قارش های کشاره بیماری سفیدک خارش محبلی و فونت محبلی فونت مجاری ادواری خوب بشه دوست. هفته یک روز در میون فعلا که حامل نیستیم هفته یک روز در میون آب لگن حما خوب تمیز میشوری تا نصف آب میکنی یه استقان سرکه استفید توش میریزی هم میزنی پایین تنه رو لخ میکنی 20 دقیقه توش میشنی فعفونات ها اینها هم از بین بره چیزهایی که تأثیر کننده خون قویه مثل کاهو مثل آب انار شیرین و چیزهایی که ضد های باکتریایی و حتی بیماری سوزاکه مثل آب انگور. <تصفح> پس وسط روز یک لیوان آب انار شیرین، عسلانه، یک لیوان آب انگور تازه طبیعی. به باعثی تهنیت میشن زریه طیبه ان حالا من افسانه از کردستان گفتم مادرشون روی ران پاشون یک قارچ دارن حالا این قارچ رو توضیح نمیدن دیگه ما اقسام قارچ داریم انواع قارچ داریم به صرف یک پماد خوب نمیشه اما داروی قوی ضد قارچ طبیعی اصل طبیعی اصل طبیعی ضد قارچه ضد ویروس ضد باکتری ضد میکروب سیستم دفاعی بدن رو تقویت میکنه روی یک اصل طبیعی روزی یک بار دماله. درست. اصل طبیعی رو به خود قارچ بده، نیازی با چیز ترکیبش. خب دوستان تا فهم چون هفت دقیقه وقت برنامه دارین، یه لطفی بکنم ما یکی یکی تماس ها رو پاسخ بدیم. یعنی یه تماس با ما بدم و تماس بعدی بود پاسخ رو بدین بعد به تماس بعدی. اول تماسی که الان در این بخش دارین به من بگن که آقای ابراهیمی از اهواز آیه ابراهیم از که تماسشون برقرار جای کازمید تماس بعدی رو به من بدین آیه ابراهیمی تماسشون دوباره آیه ابراهیمی بله ارسال کنید خب طوری که تماسشون بله آیه ابراهیمی سلام علیکم خدمتتون شادیه جهانی ولایت بپند سلام خانم معین خانم من به من گفتن اس که میخوان من گفتن که آیه ابراهیمی رو بحث میکنید دحمتون هستم بخاریم مهم بپرموزیم سلام. سلام. سلام سلام هستم خدمت هاش آقا بله بپرموزیم بپرموزیم که من از موقع ازدواج کردم صورتم خیلی های بعدی میزنه مثل یک لخته خون رو صورتم هم میفته و لخت چم... مثلا سیاه بله. بعد یک ماه دو ماه ما خوب میشه حالا من که دوشهای چرکی زیاده هم میزنه یه دیکای لخته خونم میفته رو پوست صورتم خانم بعد داروی شما چهار چیزه. در 24 ساعت چهار لیوان آب آشامیدنی سالم، چهار لیوان آب جوش یک لیوان آب انار شیرین با ناهارشان هم کاهو بدون سس بخوریم همین این موارد خوب میشه بدون سوس جوشاتون رو پشار ندیم لکاش تا چند هفته میمونه جوشاتون رو نتره کنیم فرس خودها قضاهای صنعتی سوسیس کالباس همبرگر یا تعدیق ساخت کردنی اینها رو نخوریم که تشدید نشه آتقا. خب تماس بعدی رو دوست هم اتاقا اگه به من رس کنم بگن که اسمشون چی هست؟ بتونید پاسوخ چون پروژه چهار دقیقه زمان داره. تماس اگر بزنین که سوالات پایینی اجقال بین حالا که تماس رو بحث می‌کنم شماتون هستم که پول های ارتباطی ما رو بلدید. 3059 10 شماره پرمک ماست. ایمیل ما مشهد@اکساینولایت.تیوی.کام این مشهد@اکساینولایت.تیوی.کام را اگه این ارتباطا رو از طریق ایمیل با هم دیگه برقرار کنیم. خیلی بهتون کمک خواهد کرد تا به پاسخ آقای تورایی از اسپان که آخرین تماس ما باشند ایشون ممنونم آقای تورایی عرض سلام دارم شب کی جوانی ولیت بپند آلو آلو سلام بفرمایید شماتون بدی آیتو رئیسه دیگه عناصتون رو ببندین صدای تلفن صدا من ممنونم متشکرم جناب برافرید من دارم آقای تورایی بفرمایید تو, تلیف... تو بله، بیماری دارم بله و چند ساله که هم نه و هم روی سرم بله حتما شما که بیماری پسوریازیس به اصطلاح پزشکی جدید در تخصص پستموه به اصطلاح روایات بیماری نوع ام هست خفیف، شدید، معکوس، پسچولر داروی عمومیش در خفیف متوسطیه استفاده از کولتار و همچنین هر روز کاسنی بخورین هفت برگ یک قاشق مربع بخوری یا یه استکان عرق کاسنی و همچنین بدن رو در حمام با شوینده کتیرا با کتیرها بشورن سر و صورت با گردنشون بدنشون بله بله این دارو عمومیه. باز داروهای پیش رفته هم داریم بحثه فوتو, فوتو کوموترافی و چیزهایی دیگه علا اونا سخت میشه خوب حتی اون انتهای برنامه دو دقیقه به برنامه داریم دلست. خیلی دوست دارم که ما خیلی دوست داریم توی این برنامه بتونیم آیاتو ضروریات شما از کتاب هایی که شما می‌آرید، این دیگه شما حتی کتاب رو هم وقتی نواردید، دیگه برنامه‌ای ان شاءالله بتونیم بذاریم، میتونیم اون نکات اصلی و اساسی و شاید ما یه دونه برنامه بذاریم. الان میتونیم به 10 9 15 نفر پاسخ بدیم، ولی بعد از اون ها به پاسخ خیلی بتونیم ان بدیم. در خدمتتون هستم برنامه سلامت باشد. اللهم صل و و بعلیها و بنیها و المستودع المستودعفیها و عدد ما احاط به علمک خدای حوائج مولا صاحبت زمان را به و فضلت حوائج امت مرحومه بالاخص شعیان محمد و محمد را به و فضلت برآورد همه اینها را عزیز بدار ایشان و نسلشان را ذریه طیبه قرار بده دیدگان و قلوبشون را به جمال و قلب نورانی مولا صاحب زمان منور بگردان. همگی را در خدمت مولا صاحب زمان قرار بده برای ایجاد جهانی عدالت گستر، جهانی امن، جهانی با عافیت و امنیت کامل برای نسل معاصر و های بعدین. همه را به خدا می‌سپاریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. له مونم متچکر مجا خب من چند تا دتر بگم و انتهای برنامه ها که د بیشتر زمان نداریم. اول از همه پول ارتباطی پرناکی ما ۳۵ که واقعا شرمتون هستیم شاید نمیتونیم پاسخ بریم ولی این پرناک های شما کمک میکنه به ما که بدونیم شما هستید برنامه ما رو میبینید الان تلفن ها خودش داری اینجا میطورره که با قول دوستان اتاقفهممانه ما. انتهای پرنااک من اول می خیلی خوب بود که ایمیللاتتون زدید واقعا ممنونم عثاری که اون کسایی که پرمگ زدن و ایمیلشون رو انتهای پرمگ دادن قطعا به پاسور خودشون میرسن دوستانی هم که میخوان 100 درصد پاسور خودشون داشته باشن دسته باشم قطعا این کارو بکنن از طریق ایمیل هم که مچد@sain.velayattv.com هست میتونید اقدام کنید در داخل سایت هم حالا با یه دیلی دو سه تا برنامه‌ای متن برنامه صدای برنامه صوت برنامه تصویر برنامه داخلش هست velayattv.com میتونید مراجعه کنید اونجا در بخش برنامه‌ها به برنامه, برنامه آینه سلامت انتخاب کنید و به پاسخ سوالاتون برسید. تکرار برنامه ها که در ساعت دیگه‌ای پخش میشه اون ساعت تلفن شما رو پاسخ پاسخگو باشیم. پس فقط فقط لوت کن چهارشنبه ساعت 18:30 دقیقه الی 21:20 حتی به نظر من الی 20 تماس بگیرید تلفن هاتون رو پاسخگو. ساعت دیگه‌ای نمیتونیم تلفن تلفنتون باشیم. مثل هفته پیش اگه شنبه قرار بود تا جواب بدیم اعلام کردیم این هفته قرار نیست حاجی‌ها بیان و ان شاءالله هفته بعد در شما عزیزان هستیم. تکرار برنامه هم که یک از تکراری که داریم فردا ساعت دوازده زون هست ایشاره که میتونیم توی این برنامه مشکلات شما از رو حل کنیم روایت داریم حدیث داریم از حضرت صاحب از زمان از جلاله تعالی فرج و که در فرج من فرج کارهای شما نیست هست پس اللهم اجل ولی کل فرج ول آفیت و نهست اللهم خیلق عوانی و انصاره و مساشدین بینیده خدایارو نگه داری.